جلسه شما از دست است. و, و اگر یک حکمی بدون مرتبه ارتزاع باشه به معنای اینه که یک حکمی بدون ملاک و تحقق یک حکم در خارج بدون ملاک محاله. و هم باید ارتزاعی باشه یعنی یک ملاکی مقتضی این حکمایت باشه یا ملاک مسلحتی یا ملاک مفصدی یکی از این دو تا ملاک باید باشه تا یک حکمی اختضای این رو پیدا کنه که به عالم انشابه است این مرتبه اولا مرتبه دوم مرتبه انشابه و جعل کشاره بعد از لحاظ مساله و مفاسد واقعیه بعضی از احکام رو برطب کن مساله و مفاسد واقعیه جعل میکنه انشاب میکنه که بهش میگن مقام جعل حکم شریع و مقام سبوته این هر حکم شرعی واقعی دارای این مرتبه دو که شارین رو انشاء کرده و انشاء این حکم مترتبه بر مرتبه اختزاءه به خاطر که هر حکمی بخواد انشاء بشه یقین هم باید براش مقتضی و ملاک باشه و داخل پرانتز آیین بلویسن آن رو بعدا هم بیشتر توضیح میدیم الان در تعبیرات تسامه هم مقتضی میگیم هم ملاک میگیم لی اونا که فرقون جوهری بین مختی و ملاک بین ملاک و مختزی فرقه و دو در تعبیرات اصولیین به تسامو به مختزیات ملاکات هم گفته میشه. یا ملاکات احکام شریه همون مختیات احکام شریه ولی به نظر دقیق و فنی فرق از بین ملاکات و مختزیات که توضیح میدیم در مباحث آتیین شده کلال مرتبه دوم، مرتبه انشاء مرتبه جعل مرتبه ثبوت کشاره ترکون ملاکات و مختزیات حکام بزید حکام رو جعل می مرتبه ثبوت مرتبه فعلیت تعبیر خیلی عامی مرتبه فعلیت همون ابلاغه یعنی بعد از اینکه یک حکمی دارای ملاک بوده و انشا میشه اگر شعاره این رو یا مبنن این حکم رو بخواد ابلاغ کنه بهش میگن مرتبه فعلیت مرتبه ابلاغ احکام رو مرتبه فعلیت میگن که بعد از اینکه یک حکمی انشاء میشه این ابلاغ میشه برای عمل مکلفین یا برای اجرا مرتبه ابلاغ رو مرتبه فعلیت میگن یکی <تصفح> از مباحث مرتبط به این مقام اینه که فعلیت دو تا تفسیر داره یک تفسیر مال محقق ناینیه یک تفسیر مال محقق خراسانیه و تفسیر محقق ناینیه همون تفسیر شیخ انساریه این ها رو برای مباحثات خودشون تحقیل کنن پیدا کنن این ها رو بحث کنن یعنی میگن مرتبه فعلیت مرتبه که موضوع به فعلیت رسیده به این معنا که این حکم ابلاغ شده و همه شرایطش از نظر فعلی شدن تمامه مرتبه فعلیت احکام مرتبه ابلاغ یعنی یک حکم اجرایی میشه یعنی قابلیت اجرا رو پیدا میکنه مثل تمام احکام واقعی که جعل شده بی ابلاغ شده و تمام روایاتی که ساده شده و تمام احکامی که در قرآن اومده همه اینها به مرتبه فعلیت رسیده مرتبه چهارم، م مرتبه تنجوز این احکام بر مکلفه و مرتبه تناجوز معناش اینه که در این مرتبه مخالفت این احکام اقاب داره بر مخالفت همه خلاصه تندجزه و شرط تندجز بخواد بگه کسی این اوامر و نواهی رو بخواد مخالفت کنه اقاب میشه در چه موارد انسان مخالفتش اقاب داره در مواردی که تکلیف برش منجز باشه اگر یک تکلیفی بر انسان منجز نباشه مخالفتش اقاب نداره پس شرط اقاب بر مخالفت یک تشلیف اینه که به مرحله تندجز رسیده باشه و احکام واقعیه کی به مرحله تندجز میرسه وقتی انسان علم پیدا کنه اگر علم پیدا کنه مرحله تندجز تمامه اگر کسی علم به احکام پیدا نکنه این مرحله تندجز رو نداره یعنی مخالفت احکام فعلیه اقاب نداره مخالفت احکام انشائیه اقاب نداره مخالفت احکام منجزه اقاب داره اگر یک تکلیفی بر انسان منجز بشه یعنی معلوم بشه بر انسان مخالفتش اقاب داره پس مرتبه چهارم میشه مرتبه تنجز و تنجز هر حکمی مشروط به علمه این علم رو میگن علم طریقی مخالفت احکام انشائیه اقاب نداره کسی با علم لدنی بله یه حکمی جل شده ولی به فعلیت نرسیده یه روایتی داره که اشاره احکامی رو داره و اونها رو به شما نگفته و نه اینکه یادش رفته باشه خاطر رعفت و رحمت اونها رو بر شما ابلاغ نکرد احکام انشایی شایدن خیلی زیاد باشه حالا ما در مقام تفسیر اصطلاحات مشهور تنصیر یعنی یعنی مخالفت شباب داریم و میشه یه حکم انشایی یا فعلی مخالفت بشه مخالفت یعنی به مزمونش هم برد نمیشه مخالفت دیگه ولی آیا اقاب داره یا نداره اون هم به تنجز میگن مخالفتش اقاب داره پس مرتبه تنجز مشروط به علمه این علمی که تنجز مشروط به بهش میگن علم طریقی و تمام احکام واقعیه مشروط به این شرط یعنی مرتبه تنجز آخرین مرتبه از مراتب احکام واقعی زبوتیهی که جر شده می نمیگن علم طریقی قطع طریقی، هر هرچی شما میخواد خواهد اسمشو بذارید و یکی از ابحاظ دیگه اینه که این مراتب احکام که مترتبه بر همدیگر آیا ترتبش منطقیه یا اعتباریه یعنی حتماً باید اول مرتبه احتیاج باشه بعد مرتبه انشا باشه بعد فعلیت باشه بعد تنجّز یعنی ترتوبش منطقیه یا غیر منطقیه ما در مقام تعلیم و تعلم اینا رو اینطوری ذکر کردیم و الا میتونه مقام فعلیت قبل از مقام انشا باشه این هم در بعضی از نواحی است که ترتوبش منطقیه یعنی مرتبه احتیاج علت مرتبه انشاه انشاء علت مرتبه فعلیت و فعلیت احکام علت مرتبه تنجوز و مرتبه تنجوز احکام معلول همه این مراتبه یه میگن ترتب منطقی این مراتب رو نمیشه به هم زدنه تمام احکام واقعی این ما ظاهری رو نمیگم ما تمام احکام واقعیه این چهار مرتبه رو دارن حالا نایگی گفتن دو مرتبه داره اون اختزار از اول زدن گفتن اون مرتبه قبل از حکمه و پنججز رو از آخر زدن گفتن اون مترتبه بر حکمه وایدلا کسی این تا رو به هم نزده بعضی رو قبل میتونن بعضی بعد می‌دونن خیلی اهمیت نداره. حالا اونها رو کسی بیشتر خواست مطالعه کنه در موازلات و سورینه رو کنه. کنن بحثی که به تفریق بین قطع موضوعی و قطع طریقی محسل کلام اینه که اگر احکام واقعی دارای مراتب چهارگانه هست اون مرتبه چهارمش که مرتبه جز احکام واقعی بر ذمه مکلف یا بر عهده مکلفه اون مشروط به علم این رو میگن علم طریقی کسی علم به احکام واقعی پیدا کنه احکام برش منجز میشه علم پیدا نکنه احکام منجز نمیشه حالا بحثمون در قطع بعدن خود مصنف ملحق میکنه امارات و معتبره زنون معتبره زنون خاصه رو به همینه یعنی یکی از خصائص قطع طریقی که الان گفتیم شرط تندجزه یکی از خصائص این قطع طریقی اینه که امارات و اصول عملیه فیل جمله و بعضی از قواعد قائم مقام میشه یعنی من لازم نیست ما قطع پیدا کنیم تا تکلیف بر ما منجز بشه اگر بیینه بر یک حکمی قائم بشه باز منجز میشه اگر استصابی باشه منجز میشه اگر قاعده سهتی باشه منجز میشه این در خصوصیاتش خود مطمئن و میخونیم من بخوام در, تف... در مقام تفریق بین قطع موضوع و قطع طریقی یه مقدار واضح باشه که قطع طریقی با موضوع چیه قطع طریقی همین علمی که شرط تناجوز احکام یا قطع طریقی حالا بحث موضوعی چی بوده این علما در آوردن در کنار این بحث کردن ذهن ها رو مخلطش کردن یعنی ما خیال میگویند دو تا اینا برادر میمونن اینطوری نیست علمی که شرط تنجز احکام باشه علم تریدی و همینو میخوان میخوان که تکالیف بر انسان منجز بشه حالا در بعضی از موارد چهار احکامش اولویت نداشته خیلی اهمیت نداشته سانویت داشته اومده نشوت به علم کرد گفت اگه علم پیدا کنی اون حکم ثابته اگه علم پیدا نکنی اون حکم نیست. یعنی اصل سبوتش مشروطه به علمه مثل نجاست اگر من علمه به نجاست داشته باشم این نجسه و اینه واقعا نجاست نداره چون نجاست و تحارت امور واقعیه نفس الامریه نیستن امور اعتباریه شاره اعتبار میکن اگه عالم به نجاست باشین عزیز اگه عالم نباشین نجس نیست. اون لازم نیست به یه شخصی بگیم لباسه نجسه باش نماز نخون یا مسجد شما نجس مهر نذار یا سجده نکن. به مال برای چی برای مردم تکلیف درست کنیم یه مشهوری به علمه و محفوظی که مکلف علم نداره. ما بیایم بگیم آقا این لباسی که داری نماز می خونین نجسه. جایی داری نماز می خونین تصفی هم لازم نیست بگیم. اگه وقتی اون مشروط به علم و مفروض اینکه شخص عالم نیست اون حکم در حقش ثابت نیست من برای چی برای کسی تکلیف درست کنم در تمام موارد احکام واقعیه اولیه کتابه مساله و مفاسد واقعی است علم شرط تنجز هاست بین علم میگن علم طریقی و در بعضی از موارد احکام سانوییت داره خیلی اهمیت نداره شاره اون حکم رو مشروط به علم کرده مثل وجوب حد برزانیه اگر علم بهش پیدا بشه حد داره علم بهش پیدا نشه حد نداره یه شخص زانی با اون خاطر اعتراف به این گناهان کسی بیاد بگه و من زنا کردم این خودش گناهه شاره چی اعتراف کنی؟ چون شاره اینها رو مشروط به علم کرده برای اینکه مستور بمونه نهایت خوبی و تقوانی است کسی بیاد بگه من دوزدیا در خیلی از موارد مشاوره شخص میاد بگه من این گناه کردم من چه, چه کاره بودم چی بودم اعتراف به این گناهان که احکامی که برش متردد میشه مشروط به علمه اعتراف به اینها خودش گناهه چه روزون می داره بگی من دوزدی کردن به خاطر این احکام داره نجاست سانوییت داره خیلی اهمیت نداره بله اگه اهمیت دارش که باید همه وسواس می شدن دیگه از نظر فقهی که بالاتر از فقه چیزی نیست نجاست مشروط به علمه یعنی اگه علم باشه ثابته علم نباشه نیست اگر شخصی که علم به نجاست نداره برای اون نجاست نداره برای اون مانعیت نداره برای چی من بهش بگم چه لزومی داره و چه لزومی داره اصلا بگردم پیدا کنم بپرسم خیلی مثلا مهمون میاد کجای خونه تمیزی که من میخوام نماز بخونم وای اینجا نجس هست یا نیست این حوله نجس هست یا نیست برای چی بپرسی اصلا لزومی نداره به خاطر اینکه نجاست به علمه اگه خودت قهرن علم پیدا کردی خب حکم ثابته و ایلا ثابت نیست پس علمی که شرط تندجز احکام واقعیه اولیه هامه باشه علم طریقی بعضی از موارد احکام سانویت داشته یا به مساله ایشارین ها رو مشروط به علم کرده زنا رو مشروط به علم از طریق خاصی کرده در زنا قائل شده به اینکه چهار تا شاهد باید دیده باشه 난 علم ملت رو پیدا کنن و این معذور کسی علم نداره میکنه چهار تا شاید ما از کجا بیاریم این زن از این خونومت بیرون این ما با این زن بوده اینها دلیل نمیشه مصالح اجزاء کرده شاری احکام رو اینطوری جعل کنه یعنی مشروط به علم اونم از طریق خاص اگه کسی بیاد این حرفا رو بزنه خودش محدود به حد قصفه چون این احکام ثانویت داره پس بین احکام اولیه واقعی و بین احکام سانویه غیرهامه که خیلی اهمیت نداره و در اصطلاح اصولی میگن احکام ظاهری فرق بذاریم احکام واقعی مشروط به تنجزه و تنجزش مشروط به علمه اون علم رو میگن علم طریقی که تمام احکام اگر هزار تا حکم در شریعت باشه بخواد اوناها بر من منسجز بشه من باید عالم باشم به اگه علم نداشته باشم هیچ کدامی ثابت نیست نه در احکام واقعیه در احکام واقعیه ثبوت واقعی دارن اینها این احکام ثابت جعل شده انشاه شده به فعلیت رسیده منتها مخالفت شما اقاب نداره مادام که علم بیدا کنه ولی در احکام ظاهریه اصلا در لوح محفوظ چیزی نیست نجاستی در کار نیست ما بگیم یکی از احکام نجاسته نه اون مشروط به علم شماست زنای این بودنش در واقع چیزی نیست یا وجوب حدش و امثال اینها اینا چیزی در واقع ندار نه مشروط به علمه باز مس معلوم نشود اگر غرض فیدا کنی به نجاست نجاست ثابت میشه اگر غرض پیدا کنه نجاست ثابت میشه این قضیه رو میگن موضوعی به خاطر اینکه نجاست مشروط به علم بوده ولی اگر شما لباستون نجس باشه نماز بخونی و نمیدونستی بعد از نماز بفهمی این نماز درست یا نه نماز درسته به خاطر اینکه نجاستی در کار نبوده نجاست مشروط به علمه در احکام ظاهیه موضوع مقیده به علمه یعنی یکی از شروط فعلیت علم فعلیت هر حکمی تا به فعیلیت در مواردی که قط موضوعی باشه به این معنی که علم شرط فعلیت موضوعه ولی در علم تاریخی علم شرط تنجز حکمه نه شرط فعلیت و حکمه. بله؟ نداره نه, نه همین میخوام بگیم نداره مفسد ذاتیش کجا بود مفسد ذاتی نداره به خاطر اینکه مشروط به علمه اصل ثبوتش مشروط به علم اگر بدونی هست اگر ندونی نیست لوه محفوظ خالی از نجاسته خالی از ملاکه خالی از مفسده هیچی نداره به خاطر روایت کلوشه نزیف حتی نهو نهوغذو یعنی بذارت مشروطه به معرفت اصلش نه که مقصده داره اون مقصده بعضی از موارد به اون خاطر هم لازم نیست اگر کسی در مسائل نجاست امسال اینها احتیاط کنه این خودش برخلاف این روایته به خاطر اینکه مشروطه به علمه کسی علم نداره نجاست براش ثابت نیست و از هم مقصده نداره در تفریق بین اینها حالا بعضی از بیانات هست که کسی تصامح در نجاست تارت بکنه چی میشه اونها در مقام تعارض با این بحث ها نیست اونها بحث های عوامانه است، اینا بحث های فنی فقه فقه میگه قضارت مشروط به علمه ولی ما بیایم بگیم اگر کسی بخواد نجاست تارت اینها رعایت نکنه چی میشه اونها در مقام معارض با این روایات اینطوری نیست این سانوییت داره در مقابل احکام واقعیه کتابه مساله و مفاسد واقعیه خودشه پس یک علمی داریم شرط تن احکام واقعیه بهش میگن علم تاریخی و یک علمی داریم که شرط فعلیت احکام ظاهریه است بهش میگن قطعه موضوعی موضوعیت داره علم موضوعیت داره مثل که میگن این شرط موضوعیت داره من پشتر این شخص میخوام نماز بخونم چون این موضوعیت داره میخواد عادل باشه میخواد نباشه موضوعیت داشتن علم به این معنی هست. که تمام موضوع علمه تمام الموضوع علمه اگر علم باشه موضوع منقه میشه حکم مترتب میشه اگر نباشه موضوع مترتب نمیشه اصلا واسطه نیست بوده. اصلا واسطه نیست نه دیگه توتوشم نه نیست در مرحله کناسیز قطع طریقی کاشف از اون حکمه اصلا واسطه نیست قطع طریقی اصلا وسادت نداره واسطه چی باشه واسطه در اثبات باشه این که ثابت بوده قبلا واسطه در کشف بگی که اونا دیگه واسطه نمیگن ولی قطعه موضوعی واسطه در ثبوته یعنی علت جعل حکمه واسطه در ثبوته یعنی علت علت اصلی نجاست علم منه اگر علم باشه نجاست هست اگه نباشه علم نباشه نجاست هم نیست غیر این میشه غیر فقهی فقیه اینو میگه که نجاست از احکام ظاهریه سانویه است اولیت نداره چون مشروط به علمه و این مساله اتمن در مقام جهلش هست شار این طوری ناره کرده به اینا سانویت داده به خاطر مقدوم گرفتار وستوازی همسال این ها نشن نه اون نیست نه. نه نه این تقسیمات رو اینطوری نمیشه بگیم نه بیایم تمام احکام وضعی ظاهری این خیلی از احکام وضعی واقعی میلایت پدر بر فرزند خودش از احکام واقعی است غیر قابل اشتراحات علم امسالی است نه نمیشه بگی دو قسم میشه دو قسم هست احکام وضعی مثل احکام تکلیفی دو قسم. اونها قالم به این بعد از نماز ولی داخل وقت باشه بین وقت و خارجش که تفکیه کاشه به خاطر بعد زباییات نه به خاطر این بحثایی اصولی و اونا رو کسی میتونه قبول نکنه فتواه شما میتونه غیر از اون باشه اگه داخل وقت باشه بعد از نواز باشه اصلا این عاده نداره القااع عاده نداره. به خاطر نجاست بدن غیر از عدم ضوع نجاست بدن مانیت واقعی نداره مانیت ظاهری داره و محخصو این مانیت نبوده حالا چرا اینطوری میگنیم این به خاطر برای قوایی دیگه هست اونها که میتونه فتواش غیر فتواع علمای ما معثر باشه ما در رسائل و مکتاب میخوایم چیزی بخونیم کللب خودش مشتت بشه دیگه ما که نمیخوام مقلب درست کنیم یه طوری بخونیم که بفهم دیگری برای چی گفته اونا خود به خود معلوم میشه مثلا اینطور روشی ندارم و کاری هم به فتوای محاصلی نداریم هر ای در مقام خوندن اصول و فقه میخواد به فتوای خودش برسه پنج سال دیگه ده سال دیگه بنابرای اون چیزی که برای شما اهمیت داره فتوای خودتونه نه فتوای دیگران ما اینطوری داریم میگیم حالا کسی رفت تحقیق کرد بر خلاف این حب متهمون دلیل خودشه ما داریم میگیم این احکام ثانویت داره اون احکام اولیت داره اونها جز امور واقعی ها محسوب میشه اینها اینطوری نیستن و مثال بزنیم به نجاست نجاست حتی در داخل وقتن باشه اصل قاعده اعاده نمیخواد بخاطر اینکه نجاستی نبوده ما نماز رو بدون نجاست خوندیم بخاطر نجاستی نبوده مانعیتی در کار نیست علال قاعده اینه حالا دیگران برخلافیم میگن اونا تابع دلیل خودشون هم. این یکی از مطالب مطلب دوم اینه که یکی از خصوصیات و فروغی که مترتب میشه بر این دو قسم برای روشن شدن تفسیر این دوتاقت این بحث رو مطلب کردیم یعنی مرتبط کردیم به مقام مراتب احکام مرتبط مراتب احکامه که بین این دو قطع موضوعی و طریقی فرق بذاریم یکی از خصوصیاتی که مترکتب میشه بر تفریق بین قطع موضوعی و قطع طریقی اینه که قطع موضوعی علا اقسامه و همچنین قطع طریقی لهو افرادون قطع طریقی افرادی داره یک قسمش قطع وجدانیه ما وجدانن علم پیدا میکنیم به حرمت به قلیت به تمام احکام واقعی علم پیدا میکنیم این یک فرد از افراد قطع طریقی آیا فرد دومی، سومی، چهارمی براش هست یا نیست تمام اصولیین من جمله خود شیف در این عبارت کلام بهش رسیدیم قائل به که خاصیت قطع طریقی اینه که امارات و اصول محرزه و بعضی از قواعد قائم مقام قطع وجدانی طریقی میشه یعنی شرط تنجز احکام یکیش علم وجدانیه یکیش بیینه است یکیش اماراته یکیش استثابه یکیش اصالت و صحت و امسال یعنی شرط تنفیذ احکام منحصر به قطع وجدانی نیست من اگر علم وجدانی پیدا کنم تا این تکاریف بر من منجز بشه اگه روایات وسائل و شیعه که سی و پنج هزار تا روایت اگر اینا قائم بشه با اینکه اینا علم وجدانی نیستن این احکام بر ما منجز میشه علم شرط تنجز احکامه علم به معنای عامش که افرادی داره یک فردش علم وجدانیه ولی امارات مطلقا تمام روایات و بیینه و بعضی از اصول یعنی اصول محرزه مثل استصاب و بعضی از قواعد مثل اصالت و سهه اینها قائم مقام علم میتونن بشن شما میخواد علم وجدانی پیدا کنی علم لدونی پیدا کنی به احکام واقعی منجز میشه امارات هم برش قائم بشه این ها منجز میشه اصول محرزه داشته باشی باز منجز میشه مثل استثام و این یکی از خصائص قطع طریقیه قطع طریقی خاصیتش اینه که قائم مقام داره امارات بعضی از اصول یعنی اصول محرزه و بعضی از قواعد مثل اصالت و صحه مثل قاعده فراغ مثل قاعده تجاوز و خیلی از قواعده دیگه این ها مقام علم ویجدانی مجتهد مثلا در خیلی از موارد علم داره ولی تمام مقلدین علمشون علم, علم نیست تمام از طریق عمال و ولی احکام واقعی بر همه شما منجز میشه پس خاصیت علم تاریخی اینه که امارات و بیانه و بعضی از اصول و بعضی از بواعد قائم مقامش میشن اونا میتونن این احکام رو بر ما منجز کنن ولی قطع موضوعی اینطور نیست قطع موضوعی دو قسمه قطع موضوعی طارتا صفتیه طارتا تاریخیه. یعنی قطع موضوعی که در ظاهر عدل لخص میشه بعضی از موارد قطع به ماه و و اون و قطع به ماه و صفت من صفات نفس اون قطعی که انسان پیدا میکنه مثل قطع ما به توحید قطع ما به نبوه قطع ما به امامت قطع ما به معاد همه اینا قطع صفتیه یعنی یک صفتی در ذات ماست قطع ما به وجود خودمون اینا رو میان قطعه به ماه و صفتون نفسانیه که واقعا قطعه مثل علم و حضوریه برای انسان در این موارد که قطعه صفتی ملحوظ باشه مثل قطعه باب قضا که شخصی که میخواد شهادت بده داید اینطور قطعی داشته باشه یعنی خودش دیده باشه نه اینکه جبرائیل بهش خبر داده باشه قطعش باید صفتی باشه از طریق بهش نرسیده باشه اگه قطع صفتی باشه قائم مقام نداره ولی اگر قطع موضوعی طریقی باشه یعنی به ماهو طریق و طریقون الالواقع باشه اونم باز قائم مقام داره مثل که میگن چه انسان صفت نفسانی قطع داشته باشه میتونه شهادت بده اگه اون صفت نفسانی رو نداره از امارات بیین اینا میتونه به اونها اعتماد کنه باز شهادت بده. بنابراین قطع موضوعی دو قسمه. قطع تاریخی یک قسمه، تمام اقسام قطع تاریخی قائم مقام داره غیر خودش رو ولی قطع موضوعی اگر صفتی باشه قائم مقام نداره، اگر تاریخی باشه قائم مقام داره. این منتهای تعبیری که شیخ آورده که قطع موضوعی رو دو, دو قسمش کرد. قطع موضوعی رو دو قسمش کرده بله؟ این موضوعی طریقی یعنی در لسان عدل اومده ولی به عنوان صفت خاصی لحاظ نشده آره حتما باید اومده باشه شیخ انساری میگه قطع موضوعی یعنی قطعی که در لسان عدل لخش شده باشه ولی ما دلیل داریم یا دلیل خود حکم یا دلیل خارجی مثل اجماع برای اینکه این به عنوان صفت خاص لحاظ نشده بلکه به عنوان طریق علل واقع شده با اینکه دندسان دل دلیل اومده باز قطع موضوعی صفتی حساب نمیشه یعنی برمیگرده به اون قتعه طریقی یعنی مثل همون خاصیت همون رو داره قائم مقام داره با اینکه دندسان دل دلیل اومده به عبارت دیگر بعضی از موارد در ظاهر از دندسان میبینه علم اخذ شده ازا علم تا به خمریت شعین فشتنه این در ظاهر دلیل اومده آیا اینقدر موضوعی صفتیه یا موضوعی طریقیه از کجا تشخیص بدیم؟ از کجا تشخیص بدیم؟ مشهور یه طریق براش دارن و چندین طریق ما قبلا گفته بودیم حالا ما الان مذهب مشهور رو میگیم من از کجا تشخیص بدم؟ که ازا علم تب خمریت شیئن فشتنه این علم موضوعیه به خاطر در لسان دلیل عکس شده شرط تن جز نیست شرط فعلیت این حکمه ولی آیا موضوعیه صفتیه یعنی می گفت ازا علم تب خمریت شیئن یعنی علم وجدانی خودت داشته باشی نه این که دیینه قائم بشه ازا علم تا به خمریت شیئن فشتنه این علم موضوعی قطعا بنابر مسئله مشهور ولی آیا موضوعی صفتیه موضوعی صفتی یعنی همون علم وجدانی یا طریقیه یعنی هر علمی علم موضوعی طریقی یعنی هر گونه علمی میخواد علم خودت باشه میخواد علم دیگری باشه پس این تعبیرات که دارم میادن برای تصحیل بر آقایون ها یعنی لبه مطالب در اینه قطع موضوعی صفتی یعنی علم وجدانی خودت قطع موضوعی تاریخی یعنی مطلق علم علم خودت باشه یا علم دیگری باشه دیینه علم داره و قائم میشه قاضی علم پیدا میکنه پس قاضی علم مال خودش نیست مال دیگری بود در تمایز در تمییز در تمییز بین قطع موضوعی صفتی و طریقی مشهور یه طریق داره که اون طریقی که مشهور گفته خیلی خوبه منتها افرادی داره تشخیصش مشکل میشه و اصل مطلب همونه که مشهور داره میگه مشهور یکی وجه برای تشخیص دو قسم قطع موضوعی ذکر کردن نه اینکه که در کتاب های اصول ذکر کنند. به خاطر اینکه در کتاب های اصول ذکر کرده بودند که عمرین قطع مشتبه نمیشد. مشهور یعنی مشهور فقه ها در مقام افتا و در اصول چیزی نگفتن در اصول گفتن الخمرو حرام الخمر معلوم حرام و غد شدن ولی میاری در مقام افتا دارند. یعنی اون متزلعین در فقه و اصول در مقام افتا مسترزن به این که یک ملاکی برای تمیز بین دو قسم قطع موضوعی ارائه بدن دیگه تمیزش به چیه اون ممیز کدومه ممیزه بین قطع موضوعی تاریقی و قطع موضوعی صفتی کدومشه ممیزش مشهور اسمش گذاشته مناسبات و حکم موضوع مناسبه اطول حکمه بر موضوع حالا دو تا مثال بزنم در موارد که انسان علم پیدا کنه به اینکه یک شخصی قاتله باید قصاصش کنه این اگر مجدهی علم پیدا کنه که زید قاتله خب باید قصاص کنن ازا علم تا به کانون زیدن قاتلن قصاص کنه علم موضوعیه ازو علم تا به خمریت شین فشتنه اونم موضوعیه ولی مناسبات حکم با موضوع میگه باب قصاص با باب خمریت و امثال اینا فردم داره در باب قصاص علمش میشه وجدانی یعنی موضوعی صفتی ولی در باب خمریت اینطور نیست ازو علم تا به خمریت شین فشتنه ولو این علم به خمریت از طریق بیینه باشه ولو علم علم خودم نباشه یعنی بین این دوتا با بین این دوتا مسئله فرق میذارم پس وزه تمیز و اون ممیز بین این که قطعه موضوع صفتیه یا طریقیه مناسبات الحکم و موضوع و شهید صدر در حلقه دوم و حلقه سوم مبسود در مورد مناسبات الحکم و موضوع بحث کرده و از بحثای خیلی خیلی مهمه پی ارتباطش به بحثا این از اون مهمتره مهمه در مقام تعلم اصول و فقه اینه که ما ارتباطات فقه و رو بسنجیم فقه و اصول مثل تار و پود میمونه تار و پود تا به مرحله فعلیت خودش نرسی یکی تار نباشه که پودش نباشه فایده نداره چیزی پیش نمیده تمام نخهای که بخواد افقی باشه فایده نداره. این حتما باید به صورت تاره بود چند بشه تا یه فرشی قالیچهی چیزی در بیاد علم فقه ما مثلا تاره و قواعدش اصول ما پوده و علمای ما بین این دوتا هیچ ازدواجی رو قائل نیستن. یعنی اصول در بحث خودش فقه هم در مقام خودش چه ارتباطی به هم دیگه نداره ما در اصول چیزی میخونیم که ارتباطی به فرق نداره و در فرق چیزی رو نیاز داریم که در اصول نخونده به خاطر که به همین علت که سال هم بخونیم فایده نداره ولی اگر اینها رو با هم آقایون در کنار هم بخونن یعنی تمام مسائل اصولی به صورت تطبیقی خونده بشه معلوم باشه اون میارها اون ها در بیاد قوه استماعات شما خیلی زود رشد میکنه یعنی پنج سال بخونی صاحب فتوامی و تجربه نشون داده تجربه نشون داد در دوره قبل بعضی از طلبه هایی که شرکت میکردن زحمت میکشیدن حالا اون که من دارم میگم اون فقط سه سال اومد اینها قوه استماعات عجیبی دارن یعنی به همه شعونات یک مسئله واقع ده. هر فرعی رو بدیم میتونه استنباد کن به خاطر این دوتا رو باید هم بخونیم اصول با فقه باید یکی باشه در فقه باید ارجاع به اصول داده بشه در اصول به فقه ارجاع بدیم بعد این ملاکات و اسرار رو باید در بیاریم یه سری داره که رو من قبلا نگذاشتم سر رول مفتاح و مفتاح و سر یعنی کلید اساسی رو ما باید بدونیم ما موبینانا خود شیخ انصاری بیانش ناقصه اومده تقسیم کرده قطر رو به موضوعی صفتی و طریقی و شده حالا معیار تشخیصش چیه اونو خودش بلده ولی ما از کجا یاد بگیریم ما که نائینی رو ندیدیم ما خون رو ندیدیم در جلسات استفتاءات اعازیم مثل نائینی نبودیم ما از کجا تشخیص بدیم وجه تمایز اینا چیه اینها رو نیازه یعنی ولو در شروع در هواشی باید بیاد می‌بگن بین این دوتا ما از چه طریق قائل به تفریق بشیم و معیار تشخیص شلومه مشهور میگن معیار تشخیص بین این دوتا مناسبات حکم و موضوعه و یکی از مهمترین بحثای اصولی همون تناسب بین حکم موضوعه که ما تشخیص بدیم کدوم حکم مال کدام موضوعه و به ظاهر اکتفا نکنیم و این میگرده به تفریق بین اخباریین و اصولیین اخباری ها رو چرا میگن اخباری اصولی ها چرا چی میگن اصولی ها یعنی اخبار رو قبول ندارن با اینکه اینطور نیست اخباریین جموده بر لفظ دارن میگن موضوعی که در دیل اومده همون موضوع حکم شریعه ولی اصولیه میگن نه موضوعی که در لسان دلیل اومده من المحتمل که قیود و شروع داشته باشه اونها رو باید پیدا کنیم اخباری میگه نه قید و شرط ندار اخباری میگه کسی امام بذاره همیشه باید این تحت الهنکش باز باشه ولی اصولی میگه اینطور نیست این روایات این نمیرزه ما همیشه با تحت الهنکی باز بخوایم تردد کنیم موقع نماز باز کن ولی در موقع غیر نماز نمیشه باز کرد این فرقهای بین اخباری و اصولیه که برگشتش به اینی آیا به این موضوع بسیط ظاهر دلیل نگاه کنیم یا به اینکه موضوع رو تحلیلش کنیم مناسبات حکم و موضوع شاخصه یه. یعنی تناسب سنجی بین موضوع و حکم شاخصه اصلی اصولیی پس این ها رو آقایین وقت بذارن و اینها تعمل کنید و فوت نشه مطم ما، بعضی از آبای میان بطنیم و... اونهای که این کلاس میان اون دوره قبل ما گفته بودیم ما میخونیم مطم نمیخونیم منطقه ما میخوایم رسائل بخونیم ما روزنامه که نمیخوایم بخونیم رسائل رو میخوایم بخونیم کسی هم رسائل میخواد بخونه یقینا انشاندار میخواد مجتهد باشه خواد که مدرک بگیره اون خواه بوسله کنید تا این بارا حل بشه معلوم باشه چی خواسته بگه.